اللهان س مننا و آ تایر بین قاهن محصومین و ن دامت داه تجم این الله مشرجم میم شد که روایتی که در باقع حد صاحر داریم اینها رو خوندیم یکیش روایت، زید شه همه تیور رو با علاقه مرسه ضربتن واحده یکیش رقایت اصحابه نعمار انجعفر نبیه ان انعباهی همین رومونی که من, من خانه یقول من تعلیم منسر شیعن کان آخر اهلی برابر حد و هر قتل الا که من چطور توبیه رو قبولم یکیشم رقایت سکومی. در را بست کنی خرم دارد الا ان این خرمش البته در این کتاب اصحاب نعمال بازداره امن علی ان کان یهول و کان یهول دو اسمت در اینجا مرمون شیخ مفید از کتاب این اصحاب نعمال یا کتاب خشابه از داره. لا تقام رو حدود و عرض مخافت ان تحمل الحمیه و دو غیر هر ممکن است کافر این خارج این حد واجب این دوره یک روز توضیح از کردیم که از خواب ما بیاسبن کلور رو به خاطر عبارتی که شعر در خود فرموده توخیف کردن که دیگه مجبوریم بخونیم اون مطاله بیشن وارد بشیم و اون توضیحات شما ارز کردیم که این یاسب نکلوبی که ما داریم روایاتش رو که از اجلاع اصحاب بنامه حسن ابن موسای خشا که اهل کوفه هستن در کتب عربره کتب عربرش رو نگاه نکرد ما ها نگاه اصولاً اصولا این سنخ روایات یعنی روایت خشا از یاسب نکلوب از اصحاب نعمان استخراج بشه خیلی نافعه یه کتابی برها موجود بوده و نه شده. شد از کرده که مرحوم اصحاب از بزرگان شیعه است این کتاب رو به این رو به شیعه روایت نکرده به قیاسه نکرده که گفته شد جزء سنی هاست بیشون رو باید. البته خش حسن موسا از بزرگان اصحاب ماست ایشون هم اون نسخه رو ببرده اون نسخهی که به اصطلاح برمیگرد به واضح سلام الله داره این یعنی تا حدی بی کتاب سکونیه اون کتاب تا کتاب سکونی مثل هم و از کلیم مثلا اصحاب ابن هممار به غیر از دیاس این کلوب سنی کسی نه برسه این که انما امام صادق هم به جناب اصحاب ابن هممار و یا و خشاب هم از ریاض ابن کلو فقط همینا میگه اون که ما داریم از خشاب از ریاض ابن کلو فقط همینه چیز دیگه‌ای از ریاض ابن کلو در دست نداره و سر این چه این کتاب برمیگرده به شیعه یکیش این چیزی بوده که امام صادق علیه السلام نکرده و و اصحاب النعمار که شیعه است و بعدها هم حسن ابن موسای که از بزرگان و اجلای اصحاب ماست حسن ابن موسای خشاب بزرگوار است. اما بعدها چی شده حالا انشاءالا توضیحات بیشترش رو بعد ارز میکنم مثلا این که تا ظاهرم به آمده خلا یعنی شرح های داره میسرسن که این برس بشه ولی حسکننده بشه برای بر حال این کتاب به قوم آمده اون چی که ما در کتاب از این کتاب در خبر داریم اینه مرحوم صدوق در کل کتاب فقیه یک حدیث از این کتاب نمید و این نشون میده اون اشکاری که ما تو ذهنمون بود که نشون میده که مرحوم صدوق فهمیده که این کتاب به نفر به اصطلاح ما ها یعنی منصوب است به امیر محونی واقعا ثابت نیست به الله با این ترکیب بهتر بود که مثلا نقضی قبول باشه فرمون صدق کلن در فقیه یک دونه روارد اوزه از خشاب و از اجابی نیگه طریقش هم به خشاب ننوشته مشیقه طریق نداره از کردیم حدود نهود و خورده این ها کمازی ها به خاطر اخلاف زبطه اصما مورد ما در فقیه داریم که در مشیقه طریق ننوشته چون در مشیقه فقیه اینجوریه یه روال فلان بعد در اخرش نمیشه ماکان فی انفلام ببینید سر ماکان دی انظاره ببینید سر ماکان وی ان این اصطلاحا یا مشیخه یا مشیخه ال اختلافو ظن یا یعنی اینکه بین این دو تا فرق بکنه مشیخه غیر از مشیخه باشه حالا من وارد اون بحث میشم نوشتند در این کتب رجالی معاصر ما که فواید دارن شرح این کلمه رو دادن آن منم جو مراجعه یک بار نمیگم از حالا حاله کیف مارکان مرغوم به بیشون طریقه نداره یه روایت هم بیستر نداره من همون کلینی شاید در یا پنج داره باید کلن از این طریق چار یا پنج این نکتش رو دیگه فکر می‌کنم دیگه شما ارتکاضی شده باشه سرش اینه که هم فقیق و هم کافی گذینشی هم یعنی اختیار کرده هم مرغوم صدوب و هم روایات رو، چیدن به اصطلاح در چینه روایاتی که محل اعتمادشون بوده آورده. اما مرحوم شیخ اصولا چه در تحضیبه چه در خارج کارش بودی میشه میتونه اشتباه نشون اصلا شیخ در آخر تحضیب و استقصال و اول مشیخه میگه من هدفم استقصال بوده اصلا هدفم همه را بیارم بیارن تصریح میکنم و لظام یا خمس می که مثلا روایات همین سن همین سن ایتا الان داری میکنی. همین روایات در کتاب مثل تحریب به همون بوده مورده اما در فقیق یکی. هست. و در کتاب کافی هم چهار تا یا پنج سال من چون یه کمی با کامپیزه نظر نکردم با این که موج موجم و استاد و فهارسینه ها ممکنه کمازیاد شده باشه که غیر و هر هم نشد نگاه کنش این باز باید و این کار خوبیه ممکن پکشیشن برای دوستان اگر آنون رو این کار انجام بدم خوبه کل روایت که با این طریقه استحراش و مقارنه بشه من یه مقدارش صابه در نگاه کردم مردش با مرد راست سکونی هم یکیه مثل راست سکونیه یه چند و آمدن این روایات در مسادر ما، بیشتر روی کارهایی بوده که برموم شیخ توسی انجام داده لذا همین حدیث هم که اینجا در باب حد ساهره منحرضات شیخ توسیه نه کلینی این حدیث رو لفظه کلینی ورده که حضور القرط لیکن عضور کلینی حضور القرط نیورده چرا؟ در رواز سکونی اما یوظه رو به سیف زربت هم واحده رو هم ورده من اون اما این روایت نیور مرحوم کلینی این روایت رو که حد و احل اله همیتو این رو ایشان ذهب نفرمدن و کیف ماکان این روایت الان از منترضات شیف است و تا اونجایی که من نگاه کردم علیه المنزالله شیف توسی کتاب از کتاب خشا از یه متفرقات هم اون رؤوس بیشترش یه بعضی تکوتو کرد بیشتر این قسمت احادیثش هم از سه مستره یکی کتاب سعدب نبدالله تصریح مونه سعدب نبدالله همه خشم ترض کرد روایات سعدب نبدالله اصولاً شضور در این زیاده یه مقلادش از کتاب سفاره مت اینجا و ارض کردیم کتاب سفار در فقر زیاده اما نه مرکمه صدوق کم اوزانشان کلیدیم نهاداریم میفهمیم هم شما میفهمیم دیگر ازش کرده. یه مقدارم از نهاداری حکمه است که از کتاب بزرگی بوده در قم به نام نهاداری هکم. ما تو کو میایش وفهم میکرده. ازش میشه درباری شبی بقالی بوده در کو. درباری داشته همه چی فهمید. درباری میتونی این گذاشته بوده از این کتابم هم. این کتاب رو از به ارزشی خودش تقصیم جهبه لیکن لا یوال یا رو از لحاظه ارزشی کتاب رو درش دوسه ایمون میشه پس معظم روایات تشاغ و مرموم شیف توسی از این سمسدر آورده این سمسدر انفراد شیف توسیه داره چند تا هم از بیدارید لیکن امدش این سنفرم و از اجایب اینه که سردن عبدالله که از انفرازات شیفه کدنی اصلا نمیاره و صدبارم همینطور اما کتاب نواد رو حکمه چرا برم کنیم از آن انصافش با جمع آوری شواهر وصوق به این مردم پیدا کردن کار مشکلی میشه و از کردم احتمالا این یک قسمتی از اون کتاب قضای و بسونن و احکام باشه استاذان اینجا دو قسمش آورده ولی دو قسمه به هم ندارن اینطوری بوده این نهلی امکان یقول من تعلل الناس بعد داره و یقول لا تبقى الحدود بر اهل اعداء یه مجموعه بوده به این صورت النعلی ای امکان یقول النعلی امکان یقول به این صورت بوده این رو اصحاب نهمارزه امام صادق شیعی دیوانه حالا چطور شد ای این اومده به این نظر سنی نقل کرده و به کسی دیگه هم نقل نکرده جوی دیگه نداره بله از روایت دیگری که داریم چون ضعیفه ارزشنده روایت عبالبختریه که حد دو صحر قفل تلانیتو و اوندش هم روایات سکونیه یعنی اجمالا ما می‌بینیم من در سابق توضیح دادم مجموعه روایتی در حد سهر هست صاحر هست امدهش برمیده بحیر مومنی چون خلاصش بکنیدیم کتاب سکونی انجر برنبی ان آبای ان علیه همون بختری هم انجر برنبی ان آبای ان علیه کتاب استرهات اصابه امامار انجر برنبی ان آبای ان علیه هم. همین رواهات جندوب که گفتیم زمان عثمان اون صاحب رو کش اینم برمیگرده به ان هم که گفتش کال نداره و این عمده روایاتی که با داریم اینه اون در مقابل از خود احمد علیه سلام با قطع نظر از منقول از امیر مؤمنی از خود احمد از امام با امام صادق الان فعلا چیزی نداریم. یه یک روایت واحد از امام صادق فعلا همین داریم اونم هم روایت زید شه ها قال از صاحب یک رو بسیر و ربصا واحده علا اون رأسه و این هم در کتاب کافی آمده سقی هم این روایت رو نیورده و در کتاب کافی رو نهار کرده و متاسفانه به دهاز سرد هم خیلی مشکل داره یه حبیب من حسن داره که نیمیش نسیم یک بشار یا یتار یا سیار چند جور اون اسم زبط شده و بعدم این مشهور نیست باز اونی که به فضای اصحابان مشهوره یکتره اما یه را به سیوره اصلا این اصلا مشهور نیست این راجب اجماع روایاتی که ما در باب حد صاحب داریم چون دیگه در اینجا بحث ما یک مقدارش مرموم شد که کلیدیش کرده به سکونی و قیاسب نکلو و تصالفا راجبی این نو نفر مرموم شهر یک صحبت کرده مرموم شهر توسی یه مقداری حالی چند روزی هم مونده نیم چند درد هست نیست اگر باشه این ندایی به این بحثی رژیاری سکونی و غیر سکونی تا ببینیم وزین چطوره یه مقدار راجع به این دو نفر صحبتی بشه و اوضاع خود اینها و میرانسهای علمی اینها روشن بشه. ارز کنم که اول که چون قیاسه میکرم کم حرف داره همون سکونی حرفی روشن بشه قیاسه میکرم تمام گوز ارز خیلی احتیاج به بررسی خاصی نداره طبق قاعده که ما داریم یه مقدار متعرض به اصطلاح ابتناهم کلمات اصحاب مخصوصا در موارد رجالی در یه جهاتی متعرض اول کلمات استاد و منوار خویی و بعد هم قاموس رو یک کمی مرور میکنیم قاموس منتستری و چون در این به اصطلاح مساده و اخیر شیعه یه نوع تحبولی در رجال پیدا شد و غیر از آزیه انوارا تحبول ها زیبانی شد عرض میکنم مثلا یه مرزایی رو مرموم ایردامات که فکرسوف بزرگواری هم هست توی یه رواشه داره یه مرزایی اونجا بعدها مثلا مرموم آی شفتی که در اسفحان بودن و از ساعده جالیه یه مرزایی کارهای نسبتا میشه با جدید در رجال شیعه به اصطورا بررسی ها و کارها شده یه مقدار اونا هم متعرض میشیم تا معلوم بشه مجموعی کارها چیه تا ببینیم خود اون چه نتیجه گیری انجام انجام راجع به اسماییل ابن مسلم معروف به سکونی یا شعیری سکون که قبیله ایست نسبه قبیلی در این و اما شعیر واقعا با جو جوفروش بوده ایشان اونی که در کتاب احسی سنت داریم ایشان ق در مسادر ما نیامده مسادر ما حتی تاریخ و وفاتش نیامده در کتاب اهل سنت تاریخ و وفات 180 آمده یعنی زمان موسیم جفر سه سال قبل از شهادات موسیم جفر تک تو که هم رواد از موسیم جفر داره سلطه و مزنه خیلی کمه و اله رواد کلا از حبیه عبدالله مخصوی هم جفر و حبیه هم آبار و اهل سنت هم متعرض احوال شدن تا اونجایی که من دیدم و ادعای می میکنن اونجایی که من دیدن به اتفاق او رو کذاب میگونن نه دقیق متهم متهم به که از به نظر من توی یکی از سهار ست روات ازش آمده به نظر ابن ماجیه توی از ابن ماجی از همهشون ضعیف انصافرم هم زعیفه چون رو جزت ها شده حالا مکنم داره سنی نیستی اگر سنی هم بودی این کتاب ابن ماجی رو خیلی ضعیفه این قصهش خیلی حادثه نامرغوب داره اصلا درنگ یه حدیث مفصل در فضل قزوینو در شب معراج فرمانده قزوین میگه که خود اهل سنت هم تم شده گفت این چون به شهر گداش بوده داشت مثلا نامرغوب بوده خیلی حدیث واضحه حدیث نامرغوب کی هستن کلا برای همین که تعجب این, مثل این شخص و مثلا این شخصو جزو مثلا من با مثال جزو عمه شان خیلی ضعیفه از این کتاب اثر از الاطلاق این سنن ابن ماجه خیلی ذریعی داره حالا یه حاله ابن ماجه به نظرم ایشون هم ازش نعبی میکنه از این سهار سر از سکونی این راجب اجمال کلمات آمن و اما در کلمات ما قالن نجاشی رحمه الله اسماعیل ابن عویزیان یعرف به سکونی از شعیری ایشون مرحوم نجاشی تحت عنوان اسماعیل ابن عویزیان و بسا خب این یک کار خوبیه و آن این که مثلا اتحادها رو این ارزیابی خوبی در همه جا نداره اما در ایرزیابی موارد اتحادها رو داره اسم که میبره مقاوضه مساوی متاوی مساوی مساوی میذاره این کار خوبیه و توضیح دادیم که گاهی میشه ششم در مجموعه پروتکل‌ها با 10 تا اسم باشه برای اینکه مراجع راحت بشه که از پارای خوب در کتابه رو که تمام اون اناویی شده که این عنوانی این عنوانی ای عنوان با این قبار این مراد این شخصه ای مرموم در تحت عنوان اسمایلی نه زیاد رو ممکن ممکنه در تحت عنوان اسمایلی نه مسلم چون اسم مسلم بعد ایشون مرموم نجاشی نه کرده از ایشون نه تضعیفی خیلی از گفته لحو کتاب همین مقدار بعد فرمزان قدره سوه علا عباس احمد ابن علیه ابن نو ایشون از اصلاف شیرا سیراف بودن معروف است به سیرافی معروف است به ابن نو. سیرافی البته مرحوم نجاشی یک عباس دیگه آزش درد می کنید که بیرسیشون قال اصبرانش شریف ابو محمد و توضیح داریم که مرحوم جنون انصافا جزه عیمه این شهر بوده مرد بسیار بزرگ در مرد حدیث و کتب و اصالی مرد فوق العاده است به نظر دیروز من پیر بحث اولیه حرف کردیم ایشان از اساطید مهم به مرد نجاشیست و اواخر عمر ساکن بسره میشن برداد بوزن میرن ساکن بسره میشن نجاشی هم بعضی از اجازات رو به نفره کتابت از ایشون از بسره تغازه میکنه و انصافت مرد بزرگواریست مثلا هر بزرگواری هم بالاخره اشتباطی داره بعضی جاها ها مرمون نجاشی حرفایشون رو قبول نداره اون جاهایی که قبول نداره یه اخت برنا ابن نو یه قال ابن اگه اگر گفت قال ابن نو به گیر داره اگر گفت اخت برنا ابن قبول داره و بعضی جه های عبارات اشا... مشکل هم داره حالا چون جاش اینجا نیست یه وقتیه. نکته خیلی مهم و دقیق رو دقت رو اینه که مردم شیخ توسی که شهری با مردم نجاشی و همزمان بایشونه ایشون ابن نوح رو درک نکرده تقدر می کنم دیوز تو دید ابن... چون مردم نجاش... نجاشی از اول به دنیا آمده اما مردم نجاش شیخ توسی چون از خراسان آمده و از سال 408 به بردان آمده اگر مشایفی در مقدار بوزن که قبل در 408 خورد کردن شیخ بی اونها این ابن دوم 409 مفاتشه یعنی شیخ او رو در کرده اما شیخ خدمت ایشان نرسیده چون این در بسه بوده یک دو مرموم شیخ بگه و اونقل همون مداهبه پاسده شیخ اون رو کرده گفته. که از اینکه آقای پژنان دیدیم قرار مثل قبول برهیت مثلا در فیشق قائله که خداوند روز زيرا دیده میشه شما هست که اهل سنت در بوخاره نه ایشون ایشون مذهب یا صفه بدوی یا من ایشونو در خود نگردن لزام شیخ از ابن نوح نقل نمی کنه. خوب دقت کنید اگر کتاب‌های در نجاشی باشه که تاسوع ابن نوح باشه شیخ رو ذکر نمیکنه. چون رو علمی ابن رو نداره خوب اینا مراعات بکن قررتون و الان عبا عبا ابل عباس احمد ابن علی ابن نوح. البته اینکه بیقررتون منوشی اینجا کتاب واقعا موجود بوده نسخه موجودی بود استیاب خود احمد نجاشی محمد یک راهی بایستن راه این خوبیه اگر از الانم شروع کنیم به تمرین کردن یا این کار جدا بشه در نجاشی خیلی توائد زیادی برده ببینید نجاشی خودش اهل بغداد، احمد ابن نو اهل بغداد، از مشایخ بغداد. قال اصبرم از شریف ابو محمد حسن ابن حمزه شریف یه به اصطلاح ما این روزی این حسن ابن حمزه از سادات مرعشی و بسیار جلو پردار مرعشی یا مرعشی چون زرز مرعشان شد حالا رسی نسبتش هم در کتب و نگاه بودن مرمون حسن نه همزه مرعشی از سادات بسیار بلیگرد و بزرگواره ایشان ایرانی و الاصله مازندران بوده تبرستان بوده ایشون به ارام آمده الان برای زیارت آمده بر حج آمده به بغداد آمده و چون از شخصیت های علمی بوده یه مقدار از آثاری که در قم بوده برای بغدادیها ها نقل کرده حسن نه این رابطه نه از سیدن. سیر تاریخی هم حدیث و هم سیر تاریخی اجازات رو همیشه ملاحظه کن پس نجاشی بغدادیه مرحوم ابن نو هم بغدادیه بعد ساکن بسره شده و مرحوم حسن ابن اهل ایران به بغداد آمده اهل ایران به بغداد این حمزه بسره حلقه ارتباط با مشاهد قومه چون من ارز کردم مردم نجاشی و شیخ هر دو بزرگ مقدار بسیار زیادی از مسادر که اووردن در باب فهرست دقن برمیگرده اون دقت میفرد؟ وقت باید دنبال اون رابطه ها بگردیم. که این رابطه ها چطور به قم پیدا شده؟ و چه مقدار ارزش داره؟ ابن نوح بسیار بزرگوار بسیار دقن خود حسن بن حمزه شرحان تونزه هم نجاشی در هم شهر بسیار بزرگ و از سازات این حلقه رفت با اومد حلقه رفت حسن بن حمزه بگرد کرد قال حدثنا علیه ابن معلوم شد که ایشون در قوم از علی ابن ابراهیم که استاد کلینی هم حدثه پسر ارراهیم هاشه این کتاب سکونی رو گرفته لذا این سند یعنی این اجازه تاریخیش هم واضحه از قوم از بعدها چطور به قوم آمد قال حدثنین علی ابن ابراهیم ابراهیم نهاشم من روش واضحه توسیق سریع نداره که این شواهر در رسال زیاده. و این ابراهیم نهاشم حدود سالهای دیویست دیویست و از کوفه میاد به قوم و میراث قومی کوفی ها رو به قوم میاده. کتاب ها و نویسنده ها البته من اسم کوفه کی میرم مرادم عام مثلا کوفه برنه بی عمره مورد اون کیشون بغدادیه کتاب های زیادی رو مرحوم ابراهیم هاشم به قم میاره و اینها در اون پخش میشن و تحقیق میشن تفسیر میشن اصلش ابراهیم هاشم پس برگشت به قم به نو سه ابراهیم هاشم انا نوکری نوکری از چند آدمی اشیری بودی قدیمی بودن نوفره، و بطنی بودن شعبه بودن از نخل کمیر ابن زیاد نخلی معروف که اون هم میگه اشیره یمنیست یکی از مطرونش نوفره نوفری ها به استاد این نوفری خود ساید نیدی از این هاست. یعنی از نوفره. نوفری هم داری از نوفری هم هست از نوفری هم سادره هست اون نوفری از بنی هاشم هست یک حیره یا از هست به نظر اگر حافظه ای من خراب نشده باشه نوفلیب نه حالسب نه عبد المطلب اگه نگاه کرد کتاب رو برزن این که باشه نوفلیب نه حالسب نه عبد المتلم. اونام یه تیره نوفلی هست پس دو سه نوفلی ما تو رو بارداریم. یه تیره ای که در مدینه بودن و ساداتم، یه تیره ای که در کوفه بودن و اینا سیل نیست هست هست یمنی هست بخنی یا شعبه از عشری نخنه این نوفلی اونه. و ایشون اصلا تحد زیادی نشسته میشناسین توثیق نداره تقریران ما قیل آخر اخر عمره راشی میگه گفته چه در عاده عمره شد، ایشون به ری میاد به تهران ایشون به تهران میان ظاهرا احتمالا مختیاره برای نشو دعوت تشریع ظاهرا چون تو همین ری بوده ایشون متداول شده ظاهرا نه حکالو اومی ها به اون نسبت ها بلو بزن به هر حال نوفری میاد به ری سکن ری که آفرامونه خب اونایی که از مدینه و مونساده سیده اینا اون اسم فرز و اینا اونا سیده اینا نه مثل این یک نوفری از چون این خاندان از این شخص هست اون نسبتا چند تا حدیث کیلیه اینکه این که این نوفری فقط شانش کدابو سکونیه، چون شرایط مهمش کدابو سکونیه. یه فسادار داده موسمن عبدالله و موسمن امروان فسادار داده ایشونه. اون هم رئیس بوده، اون هم رئیس بوده که زیاده جامعه رو او نگه میکنه زیرا جامعه کبیره، اون نوفلی نو نوفلی نارویش نه این نوفلی این حسین سینه یزیده اون موسمن امروان و موسمن عبدالله هم نه به اصطلاح آه... یزیده نرد الملک یزیده نرد الملک نرد نوفری الان که افماکا انه نوفری دو احتمال به طور طبیعت این احتمال قدیش این کتاب رو مرحوم عبران عاشم در کوفه از نوفری گرفته نوفری هم قاله ان اسمایل نویزی از سکونی از به کتابی پس تانا کتاب تاریخش در کوفه بوده راوی اولش هم که نوقری باشه در کوفه بوده توسعه ادوار مهاجر این نسخه نوقری میاد به قم و در قم هم این نسخه راه میوفته از دهوار مهاجر انصافا مشهور میشه حقم واقعا ان میاد ارزش میکنیم این کتاب مشهور میشه نسخه مشهور میشه من جل تسری ولی یه نراهیم هم این نصدار رو میکنه همین کتاب به تو اجازات شیعه بارد. همین نسخه. خب این هم الان میگم ما یکی از کاره که من در خوب بردن فقط ایجاد شروعه بکنم. بکنم یعنی جهل ها کدوم روشند بکنم که از علم و نقصدون واحده کسر هم جاهلون اقلن یک تکسی جهل رو کدوم ما نبیدیم چه شده این کتاب در کوفه که بوده چرا به بغدار مستقیم اعمال این, من نمیده. من نمیده. من نمیده این هم من نمیدونم من این مطلح هم کنم چونه نشده شاید یکی از شما ها نکته هسته این مطلب رو پیدا بکنه نه خب انصافا میگن خب الان مشروع شده بین افراد که کتاب سکونی معروف بوده و مشروع بوده, و مشروع بوده و بشه اعمال تنه خب اگه مشروع بوده در کوفه خب تعلیم در کوفه, یه در کوفه بعد میاد به قدار بغداد من ان شاء الله اگر اگه رخصیدیم حالا وقتی میزوزه که من توضیح عرض میکنم خود نجاشی و شیخ یه تاریخ‌هایی ام مستقیم از بغداد میگن کوفه. خوده حق باه. از مستریم از بر غالباً هم توسط ابن عقده کوفیه یا توسط حمید ابن زیاد باوفیه. حالا ان شاء الله اگر موارد دیگه آمد توضیحات کافی را عرض میکنم. چرا اون چراشم من الان نمیدونم و هر حال حدیث اما سیر حدیث رو میدانیم ابحام نداره این سیر اجازه رو میدونه یعنی تمام اینها شبازه ذکر شده این که ابحام نهاشم کوفه بوده اینه داریم از کوفه گرفته به قوم آورده، این رو داریم در قوم این کتابها رو فرش کرده این رو هم داریم قولی از ایشان از که ایشان گرفته، صندوق گرفته، قومی ها گرفتن، اینم داریم. پس حسن حمزه ای که سلیه در اهل ایران بود، آموزه قم، این نوصه رو خودش متحمل کرده، اینم شواهد کافیه، باز بعد ایشان آمده به بغداد، به ابن نوح اجازه، اینم جای دیگه داریم، اختصاصی اینجا نداره. ابن هم اجازه شو به نجاشی داره، این واضحه، اینا هیچ فرومیشه ابهام نداره، خودت درست سیر تاریخی این اجازه خیلی واضحه نسخه شم واضحه نسخه گمپریست و حتی که ما میدونیم برای نوپری شیده هم اما این صاحبان بزرگ تینشن کتاب سکومیه این ما میدونیم مثلا ما بعد از مراجعاتی که برواید داریم شخصی از بزرگان اصحاب اینا من عبدالله مغیره هم هست این هم زیاده از سکومی ظاهرن دوستان نستهی معروف اکه تا با سکونی در کوفه بوده اشهار این نسته ما نوپلیه این وضع حدیث و وضع اجازه تا اینجای که این شماه مرحوم برقی هم ایشون رو به عده البرقی که نسخاب صالح قائل هم کوفیون به اسم ابو زیاد مسلم اسم عبو زیاد مسلم یعرف شعری شعیری یعرفی عمل این یعبیان العوام شبه مخواست دیگه شون از آمد شبه مثلا یعبیان العوام نفرده نیشی و قالش شیخ من همون قصد در محجم هم رو قالش شیخ مرادشون فهرستی اگر بخواد از رجال شیخ نه رو بعد مثلا میگم وعده دبودی رجالی من اصحاب سالم این طوری به الله هم رفت قالش شیخ مرادشون فهرست شیخ مرحوم شیخ اینطور داره اسمایل ابن عویزیاد سکونی و یوارد به شعیر ایران. بله این تعبیر و اسم عویزیاد مسلم این تعبیر شیخ خیلی معخوض از, از کتاب برقی شواهد بیان داره ظاهر کتاب برقی که شیخ موجود بوده شواهد حاکی از این مرحوم شیخ در اینجا رشد لفت کتابان کبیر با نجاشی فرق داره نجاشی بود لحو کتابون اینجا داره لحو کتابون کبیر راست هم هست همه هم برد داره دوستان ما شاید 15 سال کتاب سفونی رو توبر کردیم استفادش کرده کتابش کتاب کبیریه جای بست نیست و کتاب کتابون نواده دو تا کتاب بیشان نصفر داده نواده بی هم بیشان نصفر داده در یاشی نداده در حالا این فرد اینجا جایگه هم زیاد داره که شهر با نجاشی اختلاف من. منشه اختلاف رو اصلا هم بعضی ها چا مران نجاشی یا تساقل شهر نه منشهشون اختلاف استاد و شیفه و اون مستلی که بوش اعتماد شد مرحوم نجاشی پیش ابن نوح بونده اونه که پیش ابن نمودی یک کتاب بوده دو هم بوده اون یه دو که مرحوم نجاشی خونده پیشر از اون یکی بوده بذاره گفت اون کتاب اما شیخ از اون راه نرکته و من فکر میکنم مرحوم نجاشی تو این مطلب شبه داشته دقت کنم چونی زرافت های کاریسی گفته نشده پیدا کردن من گفتها خیلی مشکل تا فهمیدن گفتها این اینطور نبوده که شیخ تصاحب داشته باشه یا نجاشی تصاحب داشته باشه مثلا شیخ میگه در اون کبیر، در اون کبیر و اون کتاب نواده حالا انجب اینه که اخبرنا به روایاته خیلی عجیبه تبیره بعدیش که تو اخبرنا چون روایات همس کردیم استلاحا در اون زمان گاهی به من روایاتی ما الان میگیم لیکن بیشتر مراد از روایات در اون زمان کتبی بوده که شخص روایت می کرده مثلا می گفتن مرحوم ابن عبی امر اجازه دید به کتبی هی بر روایاته انه ابن عبی وقت مراد از کتب ابن عبی امر تعدیفات بوده ابن عبی امر مراد از روایات ابن عبی امر کتاب های دیگری که ابن عبی امر نمی کرده که شیخ اصولاً خیلی اون دقت‌ها و ضرافتها رو مثل نجاشی هده. اینجا الان ما گیر گیت یعنی واقعا خود من هم گیت جمعی چون ما رو کلمات شیخ و نجاشی کلمه کلمه حساب میکنیم هم عدد کتابش رو بیشتر نوشته از نجاشی و تو اجازهش داره که رو به روایاتی خیلی عجیب با اخبرنا به کتابه مثلا اگر در نوب روایت یا با دادن معنی که ما روایت میگیم یعنی مثلا مخاط بگه نجار کتاب نداشت روایت متفرد بوده من یک اجازه به روایت دارم یا ممکن است مراد ایشون در روایات. مثلا شبونی کتاب قزای و رسولان امیر مؤمن امر کرده اصلا برای یعنی این کتابی که ایشون داشت علاوه حال خارج میشه شیخ طوسی کرده دقت دقیق بکنه من نمیخواب الان اشکال بکنم خب دارم که نمیفهدم نمیفهدم چرا شیخ این کاری که احتمال میدم دقت نجاشی هم روی همین جرده مشکل بود راهی رو که شیخ رفته اینجوریه ابن جید ان محمد ابن حسن ان این ابن الولید ان سفا ان ابراهیم و هنه نوفری هنه سکونی اینجا هم مرگوم شیخ سرسی رفته قوم وقت پس معلوم شد سر اختلاف چیه مرگوم نجاشی پیش و استادشان ابن نوح که خوندن یک کتاب به اسم سکونی مرگوم شیخ در اجازه ابن الولی ابن الولی از بزرگار فوق الادم هست سر ابن نوح در بردار جزو از جلده شنه. ابنال ولی هم در اون جزوی بزرگان ولی و واقعا انیمه ایشن ای کنه اجازهی داشته ابنال ولی فهرستی داشته اجازهی بزنی کنید تو بودشه زایران ابنال ولی در فهرستش به سکونی دو کتاب نسبت داده کتاب و انواده در اخری اون وقت این ابنال ولی در قوم بود، در قوم فوت کرده پیشونده به نمای بغدادی‌ها مثلا اون شیخانه پیشونده پیش رابطیشون شاگری داره مرحوم ابن الولید به نام ابن عریجی به اختصار علی بن احمد ناصر که اسم داره. به هم معروف ابن این آوا رام کلا نمی‌شناسه. یعنی ابن عریجی رو نمی‌شناسه. فراغ می‌دونیم که در اون بوده و مرحوم ابن الذری کتب خودش رو اجازه داده فهرست بیوشن داده. ایشون هم این فهرست و این اجازه رو برداشت رو آماده مقدار اونم باید فاصله مثلا پنجا سال فاصله در بغداد به این دو معاصر بزرگاه مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ دوسی اجازه من داده یا فهرست رو ردید رسیم و دیم این اجازه در اختیار شیخ هم بوده در اختیار نجاشی هم بوده من احتمال قوی میدم نجاشی با اینکه اجازه ابن پیشش بوده عمد از راه ابن الریض نکرده چرا مخواسته اثبات بکنم که اونی که مسلمه یک کتاب مال دو دوتا نیست یکی کتاب و کتاب نواده نیست پس این تحلیلشون روشن شد اولا هر دو بزرگوار به با با برگشتن برگشتننی یکی از راه ابن اولوالی دوم که از راه حسن نحمزه شیخ توسی کهل بردار ابن عبیدیر قومیه که آمده به بردار محصد اجازه را فیاره سنو بایی باورده ابن این از سفار کرده ایشون از دوباره نهاشه ما رو که سفار از دوباره اربانه هاشم که همین واسه ایست که از نوخلی از کوفه آورده پس هر دو تریه هر دو بزرگوار برگشتند به اربانه هاشم انا سه نوخلی دقیق بردیم این دور کنانمون زرافت کار کجاشو با خود مرموم عجاشی. یک کتاب به ایشان نسبت دارم مرموم شیخ دو کتاب به ایشان نسبت دارم بعد مرموم شیخ داره به اخبر ناماها اله حسین ابن اوهیولا ایشون ابن غذایریه عمل حسن ابن حمزه اینجا با نجاشی مشترک شد از کل، حسین ابن عبدالله که ابن غذایریه پدره استاد مشترک هم نجاشی از این نهر میتونن چون شون وقاتشون از در بغداد دار این آقای ابن هم از حسن ابن حمزه مرحشی همون سریف مرحشی معلوم شدین آقای مرحشی که به بغداد آمده هم به ابن نوح اجاز هم به ابن غذایلی الا این مرحوم شیخ توسی ابن غذایل رو درک کرده با نجاشی اما مرحوم ابن نوح رو درک میکرده ببینید انه حسن نحمزه انه علی بن ابراهیم انه عمی ان نوفلی ان سخونی بازم برگشت به و مثل طریق مرموم نجاشی فقط استاداشون فهم میکنن یعنی شیخ احل بغداد ابن غزاری پدرم اهل بغداد حسن ابن همزه احل ایران لکه به بغداد آمده کتاب قومیه ها مسادر قوم رو آورده و اینجمعه از علی ابن امرانی از پدرش کتاب سکونی رو آورده و الله علا محمد معاله تاهیم